فکر می کنید رایش ترین شکایتی که مشاوران ازدواج می چی هستش. به دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. امروز سری جدید درس همون را با عنوان ازدواج و خانواده شروع می کنیم. این درس ها بر اساس کتاب مقدس و کلام خدا ارائه خواهد شد. این روی کردی اساسی بر موضوع خانواده و ازدواجه. چون میدونیم خدا، خدای کتاب مقدس، زن و مرد و ازدواج رو خلق کرد. خداوند خانواده ها رو دوست داره و به همین دلیله که شیطان از خانواده ها نفرت داره و مایل هر کاری که از دستش برمیاد بکنه تا خانواده رو نابود کنه. خداوند در کلام مقدس خودش حرفای زیادی رو در رابطه با ازدواج و خانواده برای ما داره و موارد زیادی در اون هست که ما لازم اونها رو یاد بگیریم. پس از حالا برنامتون رو طوری تر کنید که در ده درس آینده با ما همراه باشید تا با همدیگه درباره نقشه و اراده خداوند برای خانواده و ازدواج بیشتر یاد بگیریم و اونها رو به کار بگیریم و حالا با هم به این درس گوش میکنیم. به سری جدیدی از ها که یکی از موضوعات مورد علاقه من هست خوش آمدید. وقتی بچه من اونقدر کوچک بودند که وقتی روی نیمکت مینشستن پاهاشون به زمین نمی من خیلی به موضوع ازدواج خانواده اهمیت میدادم و دوست داشتم که در مورد اون صحبت کنم. من تمام مدت از اون صحبت می کردم. این مسئله خیلی برام جالب بود و اونو دوست داشتم. اما بعدها وقتی اونها بزرگ شدن و پاهاشون بلند شد و برای خودشون کسی شدن، من در مورد مسئله ازدواج خانواده ساکت شدم و تا پونزده سال بعد از اون صحبت نکردم. وقتی بزرگترها از من پرسیدند چرا من در مورد ازدواج و خانواده صحبت نمی کنم؟ گفتم فکر می کنم شما جواب اون رو میدونید. اونا گفتن خوب اگه ممکنه در این مورد فکر کن و دعا کن. اون موقع خواهی فهمید که احتمالاً الان بیش از هر زمان دیگه برای این موضوع شایسته هستی چرا به خودت زحمت نمیدی و به ما نمیگی چه مشکلاتی داری و خدا چطور در این مشکلات به تو کمک میکنه؟ وقتی این کارو کردم متوجه شدم که هر کسی همون مشکلاتی رو داره که ما داریم و من قبلا هرگز با این همه سوال مواجه نشده بودم. اخیرا بچه های ما به دیدن ما اومده بودن. من منو همسرم 5 فرزند داریم و پنج نوه. همه اونها اینجا بودن و ما زمان بسیار خوبی با هم داشتیم. حال همه بچه هامون خوب بود. همه اونها در مسیح هستند و ما از این بابت شگذاریم و خوشحال هستیم. من احساس کردم که میتونم یک بار دیگه در مورد ازدواج و خانواده صحبت کنم. ما با فروتنی زیادی وارد موضوع شدیم و من گفتم باور کنید هیچ چیزی نیست که احتمالا شما دارید تجربه می کنید یا تجربه کردید یا تجربه خواهید کرد که من و همسرم قبلا اونو تجربه نکرده باشید خانمی چندی پیش شنبه به شب منو صدا کرد و بحران وحشتناکی در ازدواجش داشت و من در او خلع زیادی احساس کردم و گفتم بسیار خوب بیایید در این مورد صحبت کنیم او گفت شما نمیدونید شما با یه فرشته ازدواج کردید که البته او تعارف می کرد. اما من میدونم که در مورد همسرم این حقیقت داره. من با یک قدیس ازدواج کردم اما بذارید بهتون بگم برای ما هم آسون نبوده خانواده و ازدواج برای ما در یک سینی نقره عرضه نشده ما بحران زیادی رو پشت سر گذاشتیم. هایی که قلب انسان رو سوراخ می کرد و من معتقدم که اگه به من وقت بدید که بحران هام رو با شما در بذارم همونطور که شما بحران هاتون رو با من در میون میذارید اون وقت خواهید فهمید که من شما رو درک میکنم چون که از بحران های زیادی عبور کردم و اون دردها برای ما ذخیره ای شده که بتونیم اصولی رو در زمینه ازدواج خانواده با شما در بذاریم که به مرور زمان کشف کردی وقتی که در یک روز چندین مورد مشورت ازدواج میدادم آقای به من گفت هی hey, گوش کن ببینم ما نمیتونیم در مورد مسئله ازدواج بدون این همه چیز که از کلام خدا میگی صحبت کنیم. من هیچ علاقهی به این حرفهای خدا ندارم نمیتونی کلام خدا رو کنار بذاری بیا در مورد ازدواج صحبت کنیم و من حدود یک دقیقه به او نگاه کردم و گفتم آقا یکی از ما جای اشتباهی نشستیم و من فکر میکنم من جای درستی ننشستم چون که اگر شما مطالبی رو که خدا میگه نمیخواید بشنوید اون وقت فکر نمی کنم چیزهایی که در مورد ازدواج خانواده خواهم گفت به دردتون بخوره. تمام اظهارات و اصول من در مورد ازدواج خانواده از کلام خدا نشعت گرفته اظهارات من کاملا جهتدار هستند. فرض من بر این هست که خدا تنها کسیه که ازدواج خانواده رو بنانهاده. سالها قبل در مورد مردی شنیدم که ماشین کوهنش مشکل مکانیکی داشت و او ماشینش رو به کنار جاده کشید. مردی شیکبوش با اتومبیلی مدل بالا ایستاد تا به این مردی که ماشینش خراب شده بود کمک کنه مردی که کت و گران قیمت پوشیده بود ایستاد و کاپوت اتومبیل این مرد رو بالا زد و ماشینی که خراب شده بود فورد بود یکی از اتومبیل‌های معمولی اون دوره آقای پوش نگاهی به موتور فورد کهنه انداخت و خیلی زود اون رو تعمیر کرد صاحب فورد خیلی تعجب کرد که چنین شخصی با این سر و و با این ماشین گران قیمت توانسته ماشین او رو درست کنه از او پرسید از کجا این همه در مورد فورد اطلاعات دارید؟ اون مرد گفت آقا من هنری فورد هستم صاحب کمپانی فورد که این اتومبیل ها رو می سازه میدونید شما میتونید از هنری فورد توقع داشته باشید که بتونه اتومبیل فورد رو تعمیر کنه و من معتقدم شما میتونید توقع داشته باشید خدایی که خالق ازدواج هست بتونه ازدواج رو تعمیر کنه خدا خالق ازدواجه و اینجاست که وارد کلام میشیم و میتونیم بگیم که اینجا نقطه شروع ما هست. در متا 19 وقتی از عیسی در مورد ازدواج سوال کردند او با سوالی پاسخ او پرسید آیا نخوانده اید که این یکی از موارد مورد علاقه او بود در هر موضوعی من معتقدم ما باید همیشه با عیسی مسیح شروع کنیم عیسی در این مورد چی می گفت خب در متا 19 وقتی اونها از عیسی در مورد ازدواج پرسیدند او گفت آیا در مورد طرح و هدف خدا در این باره نخوانده در ابتدا اونها در مورد طلاق پرسیدند و او گفت ببینید اگر میخواهید ازدواج رو آنگونه که هست درک کنید باید به عقب و به ابتدا برگردید و هدف از ازدواج رو آنگونه که بود درک کنید. به این ترتیب میتونید اساس ازدواج رو درک کنید. و این جایی که من میخوام شروع کنم. در پیدایش یک ما اینطور می‌خونیم و خدا گفت: "آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید پس خدا آدم را به صورت خدا آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا به دیشان گفت بارور و کسی شوید و زمین را پرسازید و در آن تسلط نمایید کلمه پر کردن به معنی ساکن شدن در زمین و متی کردن آن هست در پیدایش دو آیاتی هستند که وقتی مردم از عیسی در مورد ازدواج سوال کردند او به آنها اشاره کرد. او این آیات را از پیدایش دو نقل کرد از داستان خلقت کتاب مقدس تکرارهای زیادی داره و همیشه برای تأکید تکرار میکنه و اینجا تأکیدی بر روی خلقت هست که خدا میخواد مطمئن بشه که ما اون رو فراموش نمیکنیم. در سراسر خلقت در پیدایش باب یک خدا به هرچی که خلق کرده نگاه میکنه و میگه نیکو هست. وقتی او جنس مزکر و مؤنث رو خلق میکنه او میگه بسیار نیکوست. اما اینجا وقتی به باب می میرسید این کلمات رو میبینید خوب نیست. چه چیزی خوب نیست؟ و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش معاونی موافق وی بسازم. و خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر پرنده آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد. و آنچه آدم هر زیحیات را خواند همان نام او شد. پس آدم همه بهایم و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد. لکن برای آدم معاونی موافقه وی یافت نشد و خداوند خدا خابی گران بر آدم مستولی گردانی تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد. خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود، زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخانی از استخانهایم و گوشتی از گوشتم از این سبب نسان آمیده شود زیرا که از انسان گرفته شده از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یکتن خواهند بود باز هم داستان خلقت رو میبینید که در پیدایش پنج تکرار شده آیات یک و دو این سومین باری هست که به خاطر تأکید این به ما گفته شده و اینجا تأکید بر روی خلق کردن انسان توسط خدا است خدا انسان رو به صورت زن و مرد آفرید و به این دلیل اونها رو به صورت زن و مرد آفرید این از کتاب پیدایش آدم در روزی که خدا آدم را آفرید به شبیه خدا او را ساخت نر و ماده ایشان را آفرید و ایشان را برکت داد و ایشان را آدم نام نهاد در روز آفرینش ایشان را آفرید که بتوانند با هم شریک شوند اینجا دوباره اون رو میبینید. او انسان رو یعنی مرد رو خلق کرد. او انسان رو در دو بخش خلق کرد. نر و ماده. اما دو بخش انسان رو میسازند. یعنی آدم رو. کلمه آدم در زبان ابرانی به معنی مرد هست. پس خدا اونها رو به صورت نر و ماده خلق میکنه و به اونها برکت میده و مقرر میکنه که روی زمین ساکن بشن، سمر بیارن و کسیل بشن. و به اونها آدم نام میده چون که باید اونها یکتن بشن. همه ما می دونیم که کتاب مقدس در این موضوع با گفتن این شروع می کنه که آن دو باید یکی بشن. یک نفر میگفت بیشتر زوجهای متحل بقیه عمرشون رو بر سر این جنگ می کنند که کدام یک باید شکل دیگری شوند. مشکل اینجاست که اونها همیشه خودشون رو به عنوان دو فرد مجزا می نه نه یکتن. توجه کنید که اینجا تأکید بر این واقعیت هست که در خلقت خدا انسان رو نرماده خلق کرده. البته اینجا باید بی پرده بگم که من افراد دو جنسی رو در راستای نقشه خدا نمیبینم. الان قصد ندارم در این مورد صحبت کنم چون این موضوع بحث ما نیست. فقط گفتم به نظر من این برازنده نقشه خدا نیست. نقشه خدا این هست که زمین با انسان‌های نیکو پر بشه. مرد و زن. به این قانون ازدواج و خانواده میگیم. ما اون رو در همون داستان خلقت میبینیم و اون سه بار تکرار شده. نر و ماده نر و, ماده. نر و ماده چیزی که ما می قانون حیات هست ما میتونیم به اون قانون ازدواج و خانواده بگیم در این درس اول من میخوام قانون ازدواج و خانواده رو مرور کنم شما میتونید بگید براساس چیزی که تا حالا خوندیم ازدواج و خانواده قانون خدا هست که به وسیله اون اراده خدا انجام میشه و اراده خدا اینه که دو شخص رو یکی نر و یکی ماده انتخاب میکنه و اونها رو شریک میسازه. اگر مطالعه کنید که او اونها رو به لحاظ زیست شناسی چطور خلق کرده، براتون آشکار میشه که هدف خدا این بوده که دو شخص رو وارد یک رابطه شراکت بکنه و این شراکت هدفی داره که فراتر از این هست که مرد زن رو برکت میده و زن مرد رو برکت میده. این هدف خدا برای پر کردن زمین به آدم‌های خوب هست. پس واضحه که اگر بهش فکر کنید، برای اینکه این نقشه این خدا کار بکنه، خدا باید دو ولی شایسته داشته باشه برای اینکه اون والدین والدین شایسته ای باشن باید شراکتی شایسته داشته باشن و برای اینکه شراکتی شایسته داشته باشن باید دو شخص شایسته وجود داشته باشن. شراکتی که خدا در موقع خلقت انسان طررک کرده اینگونه نیست که دو انگل همدیگر رو بمکن سعی کنند از هم استفاده کنند. نقشه یک انسان و یک انگل نبوده که یکی از طرفین حیات دیگری رو به نفع خود بمکه نقشه خدا این بوده و این هست که دو انسان کامل که می توانند همدیگر رو خدمت بکنن با همدیگر شریک بشن. همونطور که خدا قصد داره باید همدیگر رو خدمت کنند اگر وارد اصول این تعلیم بشید و من فکر می کنم که اونها بسیار عمیق هستند اونها امروز همونقدر حقیقی هستند که در زمان خلقت حقیقت داشتند خدا مرد رو خلق کرده و میگه مرد کامل نیست خوب نیست که او کامل نباشد و در تنهایی به سر برم. این چیزی که در زبان عبری میگه من برای او کامل کننده ای خواهم ساخت این چیزی که کلمه یاور یا معاون به اون گفته شده این کلمه در زبان ابرانی معنی تکمیل کننده هست حالا همینجا در بد شروع ازدواج و خانواده ما برخی تعاریف اساسی رو دیدیم یک مرد بدون زن ناقص هست یک زن کامل کننده مرد هست اگر با من کتاب مقدس رو بررسی کنید و اصول این نقشه بزرگ خدا رو مطالعه کنید، این قانون بزرگ خدا برای ازدواج خانواده رو ببینید، فکر میکنم خواهید دید که هر کدام از ما نقشی داریم که باید انجام بدیم. در نقشه خدا یک مرد، مرد هست و باید هم مرد باشه. یک مرد نقش و ای داره و یک زن، زنه و باید هم یک زن باشه و زن هم نقش و ای داره. این قانون ازدواج خانواده امروز زیر حملات جدی قرار داره. بهش فکر کنید هر چیزی که کتاب مقدس تعلیم میده و من میگم زیر حملات سنگین دنیای امروز قرار داره. امروز افراد زیادی هستند که میگویند یک زن باید اصالتش رو ثابت کنه و نشون بده که میتونه مانند یک مرد کار کنه. به عبارت دیگه با ثابت کردن اینکه او میتونه به خوبی یک مرد کار کنه، او میتونه ارزش و اعتبار خودش رو در انجام وظیفه نشون بده. اگر او همون وظیفه رو که مردان دارن نتونه انجام بده ارزش برابر با یک مرد رو نداره از یک سو مردان متعصبی رو داریم که به ما میگن مرد جنس برتر هست و از سوی دیگر فمینیست ها رو داریم که میگن زنان جنس برتر هستند ظاهرا چنین به نظر میرسه که یکی از این دو جنس حتما باید بر دیگری برتری داشته باشن یکی از عمیق چیزهایی که من شنیدم اینه مسئله این مهمه یا اون مهمه نیست هر دوی اینها مهمند اگر دو نفر از ما واقعا شبیه هم باشیم، وجود یکی از ما زائد خواهد بود. خدا عمدن ما را منحصرا مرد یا زن آفریده. او میخواد برخی از ما مرد باشیم، چون که ما های زن را پر میکنیم. او میخواد برخی از ما زن باشیم، چون که اونها های یک مرد را پر میکنند. اما فشارهای فرهنگی سعی دارن ثابت کنند که یکی از دو طرف برتر و یا هر دو طرف مساوی هستند بذارید این قانون مبنایی ازدواج و خانواده رو با فکر کردن به یک هرم که به سه قسمت تقسیم شده، به تصویر بکشیم. در قسمت تحتانی بنویسید اشخاص، در قسمت میانی بنویسید شرکا و در قسمت فوقانی هرم بنویسید والده. برای اینکه یک هرم داشته باشید، شما نمیتونید فقط قسمت فوقانی رو داشته باشید. اگر تا حالا هرم دیده باشید، تا کنون هرمی ندیدید که فقط قسمت فوقانی داشته باشه. و قسمت میانی و تحتانی رو نداشته باشه. این غیر ممکنه. به همون ترتیب امکان نداره که دو نفر بدون اینکه شراکتی بر مبنای نقشه الهی داشته باشن بتونن والدین شایسته ای باشند. و همینطور امکان نداره که بدون داشتن قسمت تحتانی قسمت میانی یک هرم رو داشته باشید. قسمت تحتانی یک حرم قسمت بنیادی و ضروری یک هست. اشخاص بزرگترین و بنیادیترین قسمت ها هستند. اون برای پشتیبانی هرم ضروری هست. به همان ترتیب سعی می کنیم که نشون بدیم قسمت ضروری ازدواج وجود دو شخصی هست که این ازدواج رو امکان پذیر می سازن. این کلید یک ازدواج به روش مورد نظر خدا هست. اگر از جنبه منفی به اون نگاه کنیم چهار عرصه مشکلات در هر ازدواج وجود داره به عنوان مثال من از ازدواج خودم صحبت می کنم تا اینکه کسی رو نرنجونده باشم. عرصه مشکلات شماره یک. ارسه شماره مشکلات یک من هستم. من ارسه بزرگی برای مشکلات هستم. وقتی همسرم با من ازدواج کرد، او اتیه ایمان داشت. بهتون بگم من از سلامتی چندانی برخوردار نبودم. عصبانی و پر از خشم بودم و حدود 150 کیلو وزن داشتم و توانایی چندانی از خود نشان نمیدادم. او اتیه ایمان داشت و با من ازدواج کرد. او قصد داشت که به افریقا بره و در اونجا خدمت بکنه و افریقا رقیب من بود. اما بالاخره او تصمیم گرفت که با من ازدواج کنه چون میدونست که من چالشی بزرگتر از افریقا برای او هستم پس تصمیم گرفت پاپیش بذاره و با من ازدواج کنه اما بهتون بگم که اگر قبل از ازدواج من پنجاه مشکل داشتم اون شراکت قبل از اینکه حتی زن واردش بشه پنجاه مشکل آماده داشت حالا فرض کنیم که زن من هم پنجاه مشکل داشته باشه اون وقت بعد از ازدواج حتی قبل از اینکه به سازگاری با هم فکر کنید اون ازدواج صد مشکل آماده داره در مشاوره های ازدواج که به مردم دادم این سخت ترین چیزی هست که من با اون مواجه شدم فکر می کنم می اینو درک کنید میخوام چند تا چیز بگم و میخوام مطمئن بشم که شما درک میکنید این یکی از اونهاست اگر شما قادر نباشید که بپذیرید و یا اقرار کنید که شما بخشی از مشکل هستید باید بگم که هیچ مشاوری در روی کره زمین وجود نداره که بتونه به ازدواج شما کمک بکنه. اگر شما نتونید شخصی رو قانع بکنید که با مشکلاتش مواجه بشه اگر نتونید رو متقاعد کنید که به مشکلاتش اقرار کنه قانع بشه که خودش رو تفتیش و بازرسی بکنه و بدون که مشکلات بیشماری داره هیچ امیدی به اون شراکت نیست. اگر هیچ هیچکدام از طرف این, این واقعیت رو نپذیرند که مشکلاتی دارند و هر کدام باید روی اون کار کنند، چاره برای اون نخواهند یافت. با فیض خدا من به مشکلاتم اعتراف کردم و کمک های زیادی دریافت کردم و فیض زیادی از خدا دریافت کردم. اگر شما مشکلات زندگیتون رو حل کنید، بسیاری از مشکلات زناشوییتون حل میشه. من موارد خیلی سختی رو دیدم که بهتون خواهم گفت. بذارید با داستان کوتاهی براتون مثال بزنم. مردی با سه تخم مر و کاهویی روی سرش و تکه ژامون آویخته از هر گوشش به دیدن روانکاوش رفت. دکتر از او خواست که وارد بشه و بشین. او با دقت زیادی روی صندلی نشست و مراقب بود که تخم مرقا از روی سرش نیفتند. دکتر گفت: «میخوای راجع به این صحبت کنیم؟ او گفت: بله دکتر، من میخوام راجع به برادرم صحبت کنم. برادرم واقعا مشکل داره. روانکاوها هر روز با چنین افرادی روبرو میشن و این دقیقا همون چیزیه که عیسی در متا گفته که، چوب را در چشم خودت نمی بینی اما دنبال پرکاه در چشم برادرت می کردید. وقتی از کسی انتقاد می کنید و به مشکلات خودتون نگاه نمی کنید همونقدر مسخره به نظر می رسید که اون مرد با کاهو و تخم مرغ روی سرش مزهک به نظر می رسید. شما خودتون رو متخصص خطاهای دیگران میدونید مخصوصا در خانه و در ازدواجتون. شما اول دیگران رو متهم می کنید. اینجا یک اصل مهمی هست که خواهیم دید بزرگترین. مشاوره های ازدواج در دنیا رو میتونیم در کتاب مقدس ببینیم. به تعدادی از این مشاوره های ازدواج با هم نگاه خواهیم کرد و به برخی از الگوها دست خواهیم یافت. این یک الگو هست. این بسیار واقع گرایانه هست هرگاه در کتاب مقدس به ازدواج اشاره میکنه دو شریک رو به صورت اشخاص می بینه. اون در مورد مرد با مرد صحبت میکنه او به مرد میگه که در مورد مرد می چیکار بکنه؟ یا او زن رو جدا میکنه و به زن میگه که در مورد زن میتونه چی کار بکنه. در اول پتروس سه میگه اگر زنی شوهری داره که از کلام خدا اطاعت نمیکنه، بعد او شش آیه دیگر جلوتر میره و دیگه کلمه در مورد شوهر صحبت نمیکنه. اون میگه ای زنان بذارید به شما بگم شما میتونید چی کار بکنید. شما میتونید این کارو این کارو و این کارو بکنید. حالا میبینید این واقع گرایانه هست کتاب مقدس همیشه به صورت واقع گرایانه به مسئله نگاه میکنه. اون حتی با فرزندان در مورد فرزندان صحبت میکنه. اون به فرزندان نمیگه که چطور باید والدینشون رو اصلاح کنن. اون به اونها میگه که چیکار میتونن برای فرزندان بکنن. این واقع گرایانه است چون شما تنها کسی هستید که همه چیز رو در مورد خودتون میدونید. من نمیدونم شما چند وقته که ازدواج کردید. برای خیلی ها شاید این خیلی زمان ببره تا بفهمند. اما بالاخره به جایی خواهید رسید که میگید من هیچ کاری نمیتونم برای همسرم بکنم و شما واقعا نمیتونید در ذهن شما در مقابل خدا به جای اونها پاسخ نخواهید داد شما واقعا مسئول اونها نیستید. شما تنها مسئول خودتون هستید و تنها کسی هستید که میتونید کاری در این مورد بکنید حالا من میدونم که وقتی با مردم در مورد ازدواجشون مشورت میکنم گاهی اوقات این مردان هستند که مشکلات بیشماری دارند و شما فکر میکنید خب من با فیض خدا یقینا سعی کردم که کمکشون کنم وقتی با اونها ملاقات میکنم و چندین بار جلسات ادامه پیدا میکنه تنها چیزی که در موردش میشنوم اینه که این زنیه که خدا به من داده مردی میگفت اگر موسی زن منو میشناخت حتما فرمان دیگه‌ای هم صادر میکرد این مثل یک دیدگاه بد هست همه ی مردان میتونن فکر کنن و مشکلات رو از چشم زنشون ببینن و هرگز این فکر به ذهنشون خطور نکنه که شاید مشکل از اونها باشه این همون جاییه که اونها کنده‌ی درخت رو در چشم خودشون نمی بینن. اما سعی دارن پرکار رو از چشم زنشون در بیارن این خیلی مضحک به نظر میرسه اون تونه به این واقعیت پی ببره که شاید او مشکل اصلی باشه البته همین چیز میتونه در مورد زن هم صادق باشه زنون هم میتونن متخصص کشف اشکالات همسرشون باشن اما ببینید اساس مشاوره ازدواج بر دو نفر واقع شده. وقتی من مشاوره ازدواج میدم، اشخاص رو از هم جدا میکنم چون کتاب مقدس هم همین کار را انجام میده. موردی داشتم که مردی دستش رو دور گلوی همسرش گذاشته بود و با او گلاویز شده بود و او رو کشان کشان نزد من آورده بود. من واقعا داور بیطرفی بودم، اما میدونید بعد از گذشت یک سال اون زن در محله خودش کلاس‌های تعلیم کتاب مقدس گذاشت چون که او ایمان آورد. زمانهای نزدیک این بوده که من نتونستم با هر دوی اونها یکجا ملاقات کنم چون من فقط داور بودم. من باید به طور جداگانه با اونها ملاقات می‌کردم و بعد از مدت‌ها کار کردن با اونها به موضوع شراکت و سازگاری می‌رسیدیم. اما تا زمانی که دو نفر روابط خودشون رو با خدا اصلاح نکنن شما نمیتونید به موضوع سازگاری اونها بپردازید. حالا وقتی به قوانین ازدواج و خانواده می‌رسید، این امکان هست که با انگیزه خودخواهانه، به این مطالعات بپردازید و بپرسید که از این روابط چی نصیب من میشه من میخوام ازدواج بهتری داشته باشم یک بار در یک جلسه صبحانه من گفتم ازدواج یک رابطه 50-50 نیست حتی اینطور هم نیست که هر کدام از طرفین 100 درصد خودشون رو به طرف مقابل بدن باید هر دو طرف 100 درصد خودشون رو به خدا بدن یکی از افراد این جلسه به خانه رفت و به همسرش گفت شبان گفته ازدواج یک رابطه درصد در با است و من صد هستم و تو هیچی. این یک فاجعه بود. من نمیدونم او چطور توانست به چنین نتیجه یا صحبت من برسه. ببینید اساس بسیار قوی هست. گاهی مردم به این واقعیت اقرار نمی کنند که شخص محل شروع مشکلات هست و کسی که می تونه در این مورد کاری بکنه من هستم. اگر شما به این قانون ازدواج و خانواده برسید و بپرسید این وسط چی نصیب به من میشه چیزهای زیادی هست که نصیب شما بشه. من فکر می کنم یک خانه شاد بعد از نجات خارق‌العاده‌ترین چیز در دنیا هست اما اگر شما واقعا می‌خواهید در این جلسه مقدماتی خانواده و ازدواج دیدگاهی به دست بیارید باید بپرسید این رابطه ما برای خدا چی داره نه تنها اینکه این برای من چی داره بلکه این ازدواج برای خدا چی داره چرا خدا ازدواج رو ترجیح کرد چرا او انسان رو مرد و زن خلق کرد چرا او این کار رو کرد خب اگر کتاب مقدس رو بخونید پیدا کردن جواب این سوالات سخت نیست. خدا میخواست زمین را با مردم خوب برای عزت و جلال خودش پر کنه. مزمور 128 یکی از فسیحترین و شیواترین بیانات در این مورد است. خوشا به حال هر که از خداوند میترسد و بر طریقهای او سالک میباشد. عمل دستهای خود را خواهی خورد. خوشا به حال تو و سعادت با تو خواهد بود. خیلی ها دوست دارند نقطه پایان بعد از کلمه سوم بذارن. به حال هرکس. خیلی از مردم این رو به صورت جامعه تعلیم میدن. اونها معتقدن و این رو تعلیم میدن که همه برکت یافتهاند اگر خدا خدای محبته باید خوش به حال همه باشه. اما کتاب مقدس چنین چیزی رو تعلیم نمیده. این یکی از مردان برکت یافته در مزامیر هست. مرد برکت یافته در مزامیر یکی از موضوعات محبوب در کتاب مزامیر هست. اونها همیشه به ما میگن که برکت مرد برکت یافته تصادفی و یا شانسی نبوده. اون برکات زیافت عواقب کارهای او هستند. رابرت لوئیس استیونسون گفته دیر یا زود هر کسی بر سر سفره عواقب کارهای خودش خواهد نشست. این یکی از قوانین حیات هست کتاب مقدس نمیگه خوش به حال همه. بلکه میگه خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد. یعنی ایمانداران به خداوند و پیروان راه او نه آدمهای دورو نه کسانی که ادعا میکنند به خدا ایمان دارند اما مطابق اون ایمان زندگی نمیکنند یعنی کسی که برکت یافته به خاطر واقعیت او به خدا واقعا ایمان داره و در راههای او قدم برمیداره داره این هم در مورد مرد برکت یافته صدق میکنه چون که ما دسترنج خودمون رو میخوریم و بعد این مرد بر سر سفره عواقب خودش مینشینه این هم در مورد مرد برکت یافته صدق می کنه چون که ما دسترنج خودمون رو میخوریم و بعد این مرد بر سر سفره عواقب به خودش می نشینه. او برکت یافته. شاد هست و این خاست خدا برای او هست. این مزمور همینطور به ما میگه چطور خدا مرد برکت یافته رو به کار می گیره. چطور مرد برکت یافته در نقشه خدا قرار می گیره. آیه چهار میگه اینک همچنین مبارک خواهد بود کسی که از خداون به این ترتیب مرد برکتی یافته در نقشه خدا قرار می گیره. اون میگه زن تو مثل موه بارآور به اطراف خانه تو خواهد بود و پسرانت مثل نهالهای زیتون گرداگرد سفره تو. اینک همچنین مبارک خواهد بود کسی که از خداوند می ترسد. خداوند تو را از سهیون برکت خواهد داد و در تمام ایام عمرت سعادت اورشلیم را خواهی دید. پسران پسران خود را خواهیدید. سلامتی بر اسرائیل با این مزمور زیبایی هست و این چیزیه که میگه شما میتونید هرم رو به قطعات متعددی برش بدید و اون رو اینطور قرار بدید. این نحوه کار خداوند در این دنیا هست او از طریق قانون ازدواج و خانواده کار میکنه. او مردی رو پیدا میکنه که به او ایمان داره و در راه های او گام برمیداره و به اون مرد برکت میده. زنی رو وارد زندگی اون مرد میکنه، و او رو تکمیل میکنه و اون مرد رو پدر میکنه بعد در نتیجه شراکت این دو نفر اونها اشخاص کوچکی تولید میکنند و این اشخاص کوچک این فرزندان تا حدود 20 سال با اونها زندگی خواهند کرد پرورش پیدا میکنند و برای رویارویی با زندگی در این دنیا آماده میشن این واضحترین ترین نقشه ای هست که یک نفر میتونه بهش فکر کنه اما مزمور 128 میگه خدا این خانواده رو به کار میگیره تا به شهرشون و ملتشون و در نهایت بر دنیا تأثیر بذارن. در اونجا به صحیون اشاره شده و این در عهد قدیم معادلی برای کلیسا هست. خداوند تو را از صحیون برکت خواهد داد. خدا در دنیا چطور کار میکنه؟ خوب همه ما نظراتی در این مورد داریم که خدا چطور از طریق کلیسا کار میکنه؟ اما آیا کلیسا تنها اساسی هست که خدا بر مبنای اون کار میکنه؟ در واقع نه، کلیسا از واحدهای خانواده تشکیل شده اساسی ترین واحد جامعه در دنیا خانواده هست پس خدا برای تأثیر در کلیسا از خانواده استفاده می کنه و بعد وقتی این واحدهای های خانواده به عنوان اجتماعی روحانی گرده هم می بر شهر و بر ملت و در نهایت بر دنیا تأثیر می حالا اگر اوضاع دنیا درست نباشه، اگر وضع ملت درست نباشه اگر اوضاع شهر درست نباشه شما چه کسی رو مقصر میدونید سالها پیش مجللی رو دیدم که مقاله‌ای در رابطه با موضوع مشکلات خانواده نوشته بود رشد جرائم و تأثیر آن بر کودکان و البته الان اوضاع خیلی بدتر از اون موقع هست اما دولت‌ها در صدد هستند که راه حلی پیدا کنند یادم نمیره که اونها مقالاتی بودند که از طرف متخصصین نوشته شده بودند اونها این احتمال رو بررسی میکردند که آیا این میتونه تقصیر ها باشه و بعد آیا این میتونه تقصیر آموزش و پرورش باشه و آیا این تحت تاثیر فشارهای فرهنگی هست؟ اونها حتی کلیساها و ها رو زیر سوال برده بودند. شاید اونها به وظایفشون عمل نکرده بودند. اما در نهایت اونها طبق معمول همیشه به این نتیجه رسیدند که نه، این تقصیر خانواده‌هاست. این خانه است که من بایه اصلی مشکلات جوامع ما هست. این جایی که مشکلات شروع میشه و بر اساس قانون ازدواج خانواده مسئولیت از مرد به عنوان سر خانواده شروع میشه. من واقعا بر این مورد پافشاری میکنم تا اونجایی که در خانواده های امروزی دیدم و در بزرگترین مشکلات زناشویی امروزه مخصوصا ازدواج های مسیحی این زنان نیستند که به نقش و وظیفه خودشون عمل نمیکنن. این مردان هستند که نمیخواهند مسئولیت وزیفه ای را که خدا به عنوان سر خانواده و به عنوان کاهن روحانی خانه به اونها داره بپذیرن مشکل حقیقی واقعا در اینجا هست پس تعجبی نداره که میبینیم خدا از مرد شروع میکنه ابتدای برکت مرد زمانی هست که او به خدا باور میکنه و در راههای او قدم برمیداره داره وقتی مردی به خدا اعتماد میکنه خدا زیربنایی داره که میتونه روی اون هرمش رو بنا کنه. او میتونه قانون ازدواج و خانواده رو پیاده کنه چون که حالا مردی برکت یافته داره. مرد برکت یافته با زنی برکت یافته یکی میشن و فرزندان برکت یافته به دنیا میارن و بعد خدا وارد عمل میشه. خدا میخواد اینطوری عمل کنه. او به این ترتیب بر خانه، کلیسا، شهر، کشور و دنیا تأثیر میذاره. خب امروز ما چی داریم؟ با این همه شکست ها و جدایی ها در ازدواج ها و خانواده ها امروز ما چی داریم میتونم ده ها نفر رو براتون اسم ببرم که نزد من اومدن و از من خواستن تا پدرشون باشم چون اونها پدر نداشتن مرد بسیار عزیزی که من خیلی دوستش دارم به من میگفت تا زمانی که ندونم چطور میتونم یک پدر خوب باشم نمیخوام صاحب فرزند بشم اما متاسفانه هیچ الگویی از پدر ندارم نمیدونم چطور میشه پدر شد اگر میشه لطفا تا مدتی پدر من باشید بعد از اینکه من پذیرفتم پدر او باشم مدت بعد از اون او و همسرش فرزندی به دنیا آوردند و حالا او یک پدره من کسانی رو دیدم که در دوره شناخت نزد من آمدند و گفتند میدونید ما خیلی نگرانیم بسیاری از ازدواج به طلاق و جدایی ختم میشه و ما هرگز یک ازدواج خوب مسیحی ندیدیم والدین ما از هم جدا شدند ما حتی نمیدونیم ازدواج مسیحی چطور باید باشه ما نمونه خوبی برای یک ازدواج مسیحی نداشتیم این نمونه معزلاتی هست که ما امروزه داریم من فکر میکنم چیزی که خدا در پیدایش و مزمور 128 اظهار کرده مشکل امروزی ما هست خانواده ها امروز زیر حملات قرار دارن فرهنگ امروزی به ما میگه گوش کنید دو نفر هم جنسگرا که با هم زندگی میکنن حق دارند و این هم مثل یک خانواده هست. اونها حق دارند که فرزندانی تربیت کنند. اونها میتونن والدین خوبی باشند. ببینید این کاملا برخلاف چیزی هست که ما تا اینجا گفتیم. این با چیزی که کتاب مقدس میگه جور در نمیاد. اما فرهنگ امروزی به ما میگه این هم خانه و خانواده است. شما یک خانواده رو چطور توصیف میکنید؟ خب اینجا یکی دیگه از مزامیر مورد علاقه من در مورد موضوع خانواده هست. مزمر سلیمان حکیم ترین مردی هست که تاکنون روی زمین زندگی کرده و او فقط همین یک مزمور رو نوشته. سلیمان ثروتمندترین مردی بود که روی زمین زندگی کرده بود. او باهوش ترین مرد بود و مردی بود که تفریحات زیادی داشت بیشتر از هر مرد دیگری که تا به اون زمان زندگی کرده بود. او هم پول و هم هوش کافی داشت که هر کاری که دلش میخواد بکنه. اما گوش کنید او چی میگه. بعضیها میگن او یکی از بزرگترین شکست خورده های دنیا هم بود و در اواخر زندگیش میگه اگر خداوند خانه را بنا نکند بنایانش زحمت بیفایده میکشند. اگر خداوند شهر را پاسبانی نکند پاسبانان بیفایده پاسبانی میکنند. بیفایده است که شما صبح زود برمیخیزید و شب دیر میخوابید و نان مشقت را میخورید. او همچنان محبوبان خیش را خواب میبخشد. در این دعای نبوتی شما داستان زندگی سلیمان رو می بینید. او میگه این امکان هست که زحمت شما بیهوده باشه، تعداد بسیار کمی مانند سلیمان معتاد به کار بودن. تعداد خیلی کمی احتمالا سختتر از سلیمان کار کردن اما او میگه ممکنه کار شما بیهوده باشه. ممکنه بنایی که میسازید بیهوده باشه او نه تنها معبد رو بنا کرد بلکه ناوگانی از کشتی ها رو ساخت که بروند و به یک ملکه سلام کنند. او شهرها، پارکها استابل های زیادی بنا کرد. ساختمانسازی او پایانی نداشت. او بنای بزرگی بود. اما اینجا به ما میگه ممکنه که بنا کردن شما بیهوده باشه. و میگه این احتمال هست که بیهوده نگران باشید. ما قرار نیست نگران باشید. اما قرار هم نیست بیخیال باشید. واقعا این کتاب مقدسی نیست که بگیم حق نداریم هرگز نگران بشیم کتاب مقدس به شما نمیگه بیخیال باشیم کتاب مقدس میگه نگران چیزهای نادرست نشی و این چیزیه که سلیمان میگه ممکنه که نگرانی شما بیهوده باشه چون که نگران چیزهای نادرست شدی ممکنه کار شما بیهوده باشه چون برای چیزهای نادرست کار کردی شاید ساخت و ساز شما بیهوده باشه چون که چیزهای نادرستی بنا کردی بعد از اون سلیمان شروع میکنه در مورد فرزندان صحبت میکنه بعضی ها فکر او صحبت رو عوض کرده فرزندان چه ربطی به این موضوع داره فرزندان چه ربطی به این موضوع دارند این موضوع تماماً مربوط به فرزندان میشه او متوجه میشه که همه چیز ساخته به جز زندگی فرزندانش پسر او یک احمق بود در کتاب جامعه او نگران این واقعیت هست که ادده ای احمق پولهای او رو خرج خواهند کرد و خوب عاقبت هم ادده ای احمق پولهای او را خرج کردند پسر او بود که مال او را خرج کرد او به ما میگه که زندگی پسرش رو بنا نکرده و بنابراین اینطور میگه. اینک پسران میراسی از جانب خداوند میباشند و سمره رحم اجرتی از اوست. مثل تیرها در دست مرد زورآور همچنان هستند پسران جوانی. خوشا به حال کسی که ترکش خود را از ایشان پر کرده خجل نخواهند شد بلکه با دشمنان در دروازه سخن خواهند را. ما اینجا یکی از بزرگترین مثال‌های قانون ازدواج و خانواده رو می‌بینیم. سلیمان اینجا مزموری رو به ما میده که واقعا تماماً به نفع مردم هست. او میگه کاری رو که من کردم نکن چون من بیهوده کار کردم. بیهوده بنا کردم و بیهوده نگران شدم. چیزی که واقعاً شما باید نگرانش باشید آینده فرزندانتون هست. و سلیمان اینجا با تصویر زیبایی از, از ازدواج و خانواده میاد و چیزی به ما میگه که امروزه بسیار مورد سوال قرار می گیره. پسران میراث از جانب خداوند می باشند و ثمره رحم اجرتی از اوست. خوشا حال کسی که ترکش خود را از ایشان پر کرده است. خانواده، ازدواج و والدین برای فرزندان مانند کمان هستند برای تیر. این مثال عمیقی هست مسافت و مسیری که یک تیر طی میکنه البته به کیفیت کمان بستگی دارد. گاهی به شعری فکر می کنم که میگه تیری را به هوا پرتاب کردم و اون روی زمین افتاد اما نمیدونم کجا افتاد ما غالبا همین کار رو میکنیم این کاریه که غالبا ما امروزه میکنیم اما سلیمان با حکمت عظیمی که داره به اشتباهات گذشتهش نگاه میکنه و میگه گوش کنید آیا نمیدانید که اون فرزندان مانند تیر هستند و شما مانند کمانی که اونها رو پرتاب میکنی؟ و اگر شما اونها رو به هدف در مسیری به زندگی پرتاب نکنید. پرتاب اونها کجا خواهند رفت؟ هیچ کجا. اونها چه خواهند شد؟ اونها مانند پسران من نادان خواهند شد. من فکر می کنم این تصویر بزرگی از قانون خانواده و ازدواج هست. حالا چیزی که ما اینجا میگیم با نگاه کردن به تمام این آیات شاید بتونیم سه چیز بگیم. ما باید خدا رو در ازدواجمون قرار بدیم. باید این کار رو بکنیم. ما نمیتونیم هیچ دیدگاهی از ازدواج خانواده داشته باشیم مگر اینکه خدا رو در اون قرار بدیم ما حتی نمیدونیم بدون خدا هدف از ازدواج چیه ما نمیدونیم الگوی اون چیه ما هیچ نمونه ای نداریم ما به هیچ جایی نمیرسیم مگر اینکه خدا رو وارد ازدواجمون بکنی درسانی بر اساس آیاتی مثل اینها ما نمیتونیم به نقش و وظیفه خودمون در ازدواج و خانواده عمل کنیم مگر اینکه خدا به ما کمک کنه همونطور که به ما گفته‌اند برای اینکه قانون ازدواج و خانواده کار بکنه باید دو شخص شایسته وجود داشته باشه اونها باید شرکایی شایسته باشند و باید اشخاصی شایسته باشند و ما چطور میتونیم والدینی شایسته شرکایی شایسته و اشخاصی شایسته باشیم به این گوش کنید وقتی عیسی در متی 19 در مورد ازدواج صحبت می کرد که در جلسه بعد از اونجا شروع خواهیم کرد او در مورد طلاق صحبت می کرد. او گفت هدف خدا در ابتدا چی بود؟ یقینا موسی به شما حکم طلاق رو داده. اما این برای حفاظت از زنان بوده. وگرنه شما اونها رو از خانه بیرون می‌کردید. اونها هیچ حقی نداشتند. اونها هیچ پوشیدنی نداشتند. پس به خاطر اونها و به خاطر دلسوزی برای اونها بود که موسی حکم طلاق رو داد. اما قصد خدا هرگز این نبوده. قصد خدا در ابتدا چی بود؟ بعد او گفت: قصد خدا این بود که طلاقی وجود نداشته باشه یکی از شاگردان که من همیشه با خودم فکر میکنم پتروس بوده گفت اگر موضوع در مورد مرد و همسرش این هست پس بهتره که اصلا ازدواج نکنیم حالا عیسی اینجا مطلبی اضافه کرد او گفت همه نمیتوانند این سخن را قبول کنند مگر کسانی که استعداد آن را داشته باشند این سخنی بود که او بیشتر در مورد روح القدس به کار میبرد در خدا به شما عطا شده است اما این مطلب برای دیگران در قالب مثل بیان می شود تا نگاه کنند اما چیزی نبینند. بشنوند اما چیزی نفهمند. یا به عبارتی فقط کسانی که خدا به اونها کمک می میتونند می بفهمند. شما نمی تونید بدون کمک خدا شریک خوبی بشی. این چیزی بود که ایسا گفت. مزمور 127 آیه یک و دو به ما چی می گن؟ من فکر می کنم سلیمان وقتی میگه اگر خداوند خانه را بنا نکند نایانش زحمت بیفایده میکشند منظورش اینه که هر بنایی که شما بسازید برای هر چیزی که نگران باشید مادامی که خداوند با اون موافق نباشه همه اونها بیهوده هستند سلیمان در آیه دو طور دیگری صحبت میکنه که بسیار عمیق است او باهوشترین مرد زمان خودش بود او گفته اگر خدا خانه را نسازد همش بیهوده است چون که او به محبوبان خودش در آنجا راحتی میبخشد پس لزومی نداره که تا دیر وقت بیدار بمونیم و نگران باشیم چیزی که او در اینجا بر اون تمرکز کرده اینه مثلا فرض کنیم که شما روزی بد و وحشتناک رو پشت سر گذاشتید و انتظار میره که فردا روز سختتری هم داشته باشید پس الان وقت استراحت و شما دراز میکشید و به خودتون میگید فردا کارهای زیادی دارم امروز که خیلی سخت بود باید هوشیار بخوابم و فکر کنم ببینم چطور میتونم به خدا کمک کنم که این کارها رو انجام بده. خب اگر شما این کار رو بکنید، تنها فایده ای که داره اینه که انرژیتون رو هدر میدید. اما اگر اعتراف کنید خدایا، تو از من بزرگتری، من نمیتونم اما تو میتونی. من میخوام برم بخوابم و میخوام همه چیز رو به دست تو بسپارم و بعد برید بخوابید، حالا وقتی شما میخوابید او انرژی از دست رفته شما برمیگردونه آیا به نظرتون این یک معجزه نیست شما منفعل میشید و او به جای شما عمل میکنه تا زمانی که توی رختخواب بیدار بمونید و شما فعال باشید او فعالیت نمیکنه فقط زمانی که شما دست از فعالیت میکشید او وارد عمل میشه و به این دلیلی که سلیمان میگه شما بیهوده خانه‌ای بنا میکنید این ازدواج و خانواده اگر خدا اون رو بنا نکنه بیهوده است مثل این هست که کسی به خاطر نگرانی بیخوابی میکشه. خدا فقط زمانی وارد عمل میشه که شما اعتراف کنید، شما نمیتونید و او میتونه. پس بنابه گفته سلیمان، شما بدون کمک خداوند نمیتونید فرد ای باشید. بدون کمک خداوند نمیتونید شرکای ای باشید. بنابه گفته عیسی و البته طبق تعالیم تمام کتاب مقدس، ما نمیتونیم بدون کمک خدا اشخاص ای باشیم. یادتون عیسی در یوحنا پنج میگه بدون من شما نمیتونید کاری بکنید. اون نمیگه بدون من شما میتونید یه کمی کار کنید. او گفته بدون او ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. منظور او از این چی بود؟ خب ما میدونیم که میتونیم خیلی کارها بکنیم. یقینا شما میتونید بعضی کارها رو بکنید. اما شما نمیتونید ایمان رو وارد قلب فرزندی بکنید که شما رو به مرض جنون میرسونه. فقط خدا میتونه این کار رو بکنه پس باید به او بگید خدا یا من نمیتونم اما ایمان دارم تو میتونی و با جدیت دعا کنید تا او انجام بده و سلیمان گفته اگر او انجام نده همه ی تلاش شما بیهوده است دیرخابیدن فایده ای نداره چند نفر از شما به خاطر فرزندانتون بیخوابی کشیدی ما کشیدیم چند نفر از شما به خاطر فرزندانتون صبح خیلی زود بیدار شدی و به خاطر اونها تا به حد مرگ ترسیدی سلیمان میگه همه اینها بیهوده است مگر اینکه خداوند خداوندان خانه رو بنا کنه. ایسا گفته آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. معنی این چیه؟ معنیش اینه که تولد جسمانی فقط شما رو موجودی جسمانی میکنه برای یک موجود روحانی شدن، شما باید از روح متولد بشی، چون اینجا یک واقعیتی هست. کلمه جس به معنی طبیعت انسان بدون کمک خداوند هست. اونی که از جس متولد میشه، فقط طبیعت انسانی بدون کمک خداوند هست. عیسی گفت، تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. خب میخوام این رو جمبندی کنم. ما باید خدا رو در ازدواج هامون ببینیم. ما باید خودمون رو به صورت مثبت و منفی در ازدواجهامون ببینیم. ما میبینیم که نقش و ای داریم که خدا میخواد داشته باشیم. شما باید خودتون رو در نقش و وظیفه خودتون ببینید و بعد باید مسئولیت مشکلات خانواده و ازدواجتون رو بپذیرید و بعد باید فیض خدا رو در ازدواج و خانوادهمون ببینید. با توجه به همه آیاتی که اینجا دیدیم، اگر ازدواج شما ازدواجی درست از نظر خداونده میتونید سه چیز رو در مورد اون بگید. میتونید بگید خدا این رو در کلامش ترتیب داده، این نقشه او بود، ازدواج نظریه خداوند بود. خدا ازدواج شما رو ترتیب داده. او حوا رو برای آدم آورد و اساس این هست که تصمیم برای ازدواج باید با هدایتی الهی باشه. اگر هدایتی الهی نباشه اون چیه؟ اون سازگاری جسمانیه و به سرعت میتونه تغییر کنه. بر چه اساسی شما تصمیم گرفتید که بقیه زندگیتون رو با این شخص بگذرونید باید با هدایتی الهی باشه متا 19.6 میگه آنچرا که خدا به هم پیوسته انسان نباید جدا سازد عیسی گفته این ازدواج مورد نظر خدا هست پس شما میتونید بگید اگر ازدواجی مورد نظر خدا هست خدا اون رو در کلامش ترتیب داده خدا اون رو توسط روحش عملی کرده و اگر تمام این آیات رو در نظر بگیرید میتونید بگید. فقط خدا میتونه با فیضش این ازدواج رو حفظ کنه وقتی مردم از ما میپرسند که خانواده ما چطور هستن زن من میگه با فیض خداوند همه ما خوب هستیم فقط با فیض خداوند ما باید اقرار کنیم که ما نمیتونیم و او میتونه اگر شما میخواهید ازدواج مورد نظر خدا رو داشته باشید ازدواجی که خدا ترتیب میده ازدواجی که خدا عملی میکنه و ازدواجی که خدا حفظ میکنه و ازدواجی که اهداف خدا رو برای ازدواج خانواده انجام میده ازتون میخوام که در این دعا به من ملحق بشید ای پدر آسمانی مهربان به ازدواج من برکت بده به خانه من برکت بده خانه ما رو با نور حضور خودت برکت بده و با محبت روحت به ما قوت بده به رابطه ما برکت بده تا این بنا رو به خانه مبدل کنی. به ما به عنوان اشخاص شفا بده تا بتوانیم شرکای کامل، حکیم و والدینی مهربان باشیم به ما نشون بده چطور میتونیم هر روزه به فیض تو دست پیدا کنیم دعا میکنم هر کاری که انجام میدیم در مسیر اراده تو و در مسیح عیسی انجام بشه توسط مسیح و برای جلال مسیح باشه باشد که حیات و قوت مسیح زنده و قیام کرده ما رو چنان تقویت و کنترل کنه که بتوانیم شاهدان مسیح باشیم وقتی که از خانه بیرون میدیم وقتی که به خانه وارد میشیم و مخصوصاً زمانی که در بین این چهار دیواری با هم زندگی میکنیم دعا میکنم وقتی زندگی و محبت ما در نور مسیح هر روزه به پیش میره این خانه را به عنوان فانوس دریایی برای کسانی بسازی که وارد این خانه میشوند تا بتوانند درک کنند که تو این خانه رو بنا کردی و تو با فیضت و تو با کلامت و با روحت ما رو کنار هم جمع کردی در نام عیسی پدر به خانه ما برکت بده آمین. دانشوی عزیز متشکرم که در اولین درس از یازده درس خانواده و ازدواج با ما همراه بودید چه نتیجه گیری حیرت انگیزی امیدواریم که به همراه معلممون اون دارو کرده باشید آیا این خارق‌العده نیست که ما مجبور نیستیم سر این دعوا کنیم که کدوم یک بهتریم. اگه ما هم مثل خدا به ازدواج نگاه کنیم، میفهمیم که ما چطور همدیگر رو کامل می کنیم. شوهران به زنانی زوران و زنان یزمنده‌ شوهران هستند. خدا به هر کدوم از ما نقشی داده که در روابط زن و شوی طبقه هدف اون ایفا کنیم. امروز به این فکر کنید که خدا از شما میخواد چطور همسرتون رو کامل کنید. و به این فکر کنید که همسرتون چطور شما رو تکمیل میکنه این میتونه تا برنامه بعدی ما تمرین مفیدی باشه تا جلسه آینده دعا میکنم خداوند ما عیسی مسیح که جانش رو به خاطر ما نجات داد قلب شما رو کنده از آرامش و شادی و ایمانی بکنه که از پدر آسمانی ما میاد